اعوذ بالله السمی العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الصلاة والسلام علی على نبینا و عاله الطاهرین خدمت عزیزان دانشجوی خودم عرض سلام دارم روز به خیر عرض میکنیم انشاءالله که از نعمت صحت و سلامت به طور کامل برخوردار هستید و الله که به لطف الهی از هر گونه گزند و بلایی هم به دور باشید حالا من نمیدونم به چه دلیل امروز دانشجویان من کم هستند ما نه توی مجازی فرجه داریم نه اصلا معنا داره این شرایط هم شرایطی که باید سر کلاس بود و از وقت استفاده کرد مخصوصا که دوشنبه هم باز کلاس داریم حالا در هر حال وظیفه اونهاست که این در مباحثی که گفته میشه دنبال کنند، پیگیری کنند و من هم علت این موضوع رو حتماً و حتماً خواهم خواست در هر حال بحثی نیست ما کلاسمون رو داریم انشالله که کلاس به ای باشه که قابلیت بهره بردن رو برای اونها فراهم کنیم و من حتما از مباحثی که مطرح میکنم در امتحان استفاده خواهم کرد پس بنابراین مباحثشم مرتبطه به مباحث بعده حتما باید گوش کنم. حتما باید دنبال کنم خوب بسم الله الرحمن الرحیم بحث ما در امر بود ما امر رو تعریف کردیم به طلب المتکلم من المخاطب الفعل علاوش الاستعلاق واللزوم و گفتیم این تعریف امر حقیقی است و گفتیم اگر چیزی در اینجا تغییر کنه مثلا استهلا نباشه لزوم نباشه طلب فعل نباشه اون موقع امر به شکل عمر مجازی خواهد شد معنای اون و اون معنای مجازی رو ما از سیاق و قرائن احوال یعنی قرائن لفظی و معنوی خواهیم فهمید و گفتیم که ما سیغه امرمون چهار شکل اصلی داره و دوتا شکل فرگی چهار شکل اصلیش گفتیم که امره به سیغه، به زعقه مثلاته، لذکری، امره به لام، امر قایب. این اولی عمر حاضر عمر بسیغه دومی عمر قایب عمر بلام مثل وليوف و نزوره هم وليتوف و بالبیت العتیق سوم اسم فعل عمر مثل علیکم انفسکم لا یزرکم منزل لا از عليكم علیکم يعني یعنی الزم و مستر مفعول و مطلقی که به جای فعل عم نشسته باشه مثل و بالوالدین احسان دو تا هم ما اضافه کردیم که گفتیم این دوتا در واقع سیغه های فرعی است و امر است اما منباب تأکید بیشتر یکی جمله اسمیهی که از او اراده اهم بشه مثل والمتلقات یا تربست نه به انفسه نه سلاسه که مثال زدیم دوم جمله فعلیهی که از اون اراده اهم بشه مثل تزرعون از سبع از سنی دعبا که تو سوره یوسف بود مثال زدیم یعنی ازرعون این دوتا مبالغش بیشتره یعنی در واقع میخواد بگه که شما این کارو میکنید یه بار ما میگیم بیا یه بار میگیم میایی میایی این میایی در واقع این می آیی آی یعنی که بیا اما با تاکید بیشتر به شکل فارسی که می نویسید تو این مطلب من مشخص نمی کنه که چی نوشتی چون حروف به هم می ریزه. درست شد؟ حالا در هر حال آقای امام قلی عزیز تمام شد من درس قبل رو تکرار کردم برای اینکه بدونید بعد های قبل رو گفتم رسیدیم به مثال نهم مثال نهم میگه که وقال البختری وقال البختری فمن شاء فليبخل و من شاعه فلیجود کفانی ندا کن ان جمیع المطالبی فلیبخل فلیجود فعل امر است با لام از نوع دوبوم دیگه فعل امر فلیجود جاد یجود یعنی جود کرد فلیجود پس باید جود کنی یبخل پس باید بخل بورزه اینجا فعل امر دلالت بر معنای حقیقی امر نداره بلکه تخییره تخییر یعنی چی یعنی شما مخیری مخاطب کسی که امر بهت میشه بین الف به یکی از این دوتا یعنی نمیتونی هر دو رو انجام بدی نمیتونی هر دور هم ترک کنی مخیر یعنی تو اختیار به داده میشه بین اینکه یکی از این دوتا رو انجام بدی این تخییره الان نگاه کنید میگه فمن شاعه پس هر کسی که دلش میخواد فلیت یعنی هر کی دلش میخواد بخل بورزه فلیت بخل ببرزه یعنی از الان ببرد هرکی میخواد بخل ببرزه بسم الله بخل ببرزه و من شاعه و هرکی هم دلش میخواد جود کنه ولی جود پس جود کنه پس باید جود کنه خب آدم یا بخل میبرزه یا جود میکنه یعنی یا میدهد یا نمیدهد یکی از این دوتا رو میگه انتخاب کنید یا بدید یا ندید عطا کنید یا نکنید درست شد؟ نمیشه هر دو رو انجام داد و نمیشه هر دو رو هم ترک کرد انتخاب کن مخیری بین این و این درست شد؟ چرا؟ چرا میگه شما مخیرید بین جود و مخیرید بین بخل این دلیلشه کفانی نداکن. ان جمیع المطالب کفای مفعولی یعنی عقلنا بینیاز کرد زیرا بینیاز کرده مرا نداکوم یعنی کرم شما کرم شما منو بی نیاز کرده ان جمیع المطالب از همه خواسته های دیگه داره مات میکنه دیگه میگه شما انقدر به من دادید دیگه من چشمم به دست هیچ کس نیست حالا از این هر کی دلش میخواد بخل کنه بکنه هرکی دلش میخواد جود کنه بکنه یکی جود انتخاب کنه بخل انتخاب کنه برا من فرقی نمیکنه هرکی میخواد جود کنه جود کنه هرکی میخواد بخل کنه بخل کنه چرا؟ چون من دستم پره چشمم سیره به خاطر کرم شما من اصلا، به دست کسی نگاه نمیکنم هرکی میخواد جود کنه بکنه هرکی مخوادن بخل ببرزه ببرزه یعنی دیگران مخیرند بین بخل ورزیدن و بین جود کردن هیچ فرقی برای من نداره یا آیت قرآن هست میگه فمن شاعه و من شاعه فلیعمن و من شاء فليكفر عین همینه و من شاء فليؤمن و من شاء فليكفر یعنی چی یعنی شما مخیرید مردم هرکی دلش میخواد ایمان بیاره ایمان بیاره هرکی هم دلش میخواد کفر بورزه کفر بورزه میره تو جهنم هم دارید شما مخیرید بین ایمان آوردن و کفر ورزیدن نمیشه که هر دوتا رو بود یعنی هم ایمان داشت هم کفر نمیشه هیچ کلوم هم نبود یعنی نه ایمان داشت نه کفر اون هم نمیشه مخیرید یا ایمان را قبول کنید و یا بگید کفر و من شاعه فمن و من شاعه ومن شاء و من پس تخییر یعنی اینکه مخاطب مخیر بین انجام یکی از این هاست بعدی رو نگاه کنید ده قال عبدالطیب عبدالطیب میگه این دوتا با هم مصاویه یعنی پیش من این دوتا درست شد؟ ببینید فرق تخییر با تصویه در اینه تخییر میگه شما مخیریه یکی از این دوتا رو انجام بدید ولی نمیخواد این دوتا با هم مساویه و شما رو معمور میکنه ایک اما در اینجا مساوی میخواد بگه این دوتا کار با هم مساوی هستن تصفیه هستند ببینی چی میگه قال عبودتیب عبودتیب میگه اش عزیزن زندگی کن در حالی که عزیزی او مد یا بمیر و انت کریمان و حالان که تو بزرگی بخشنده هستی بین تعلقنه ها و خفق البنود بخشندهی در کجا؟ بین زدن نیزه ها یعنی زدن نیزه الگنات جمع غناته یعنی نیزه ها. بین نیزه زدنها ها و خفق البنود خفق یعنی تکون خوردن بنود جمع بند یعنی پرچم پرچم های میدان جنگ علمه میدان جنگ یعنی در میدان جنگ یعنی و انتا کریمون بین ساحت الحرب درست اینکه تو کریم هستی بین صاحت حرب یعنی چی یعنی داری در میدان جنگ جانفشانی میکنی و پای عقیدت و پای مردانگیت میمیری میگه یا زندگی کن با عزت بدون اینکه تو سری بخوری یا بمیر پای عقیدت در میدان جنگ جامفشانی کن ببینید. یعنی چی میخواد بگید؟ میگه زندگی با عزت سر مصاویه با مردنه بگید با عزت. این دوتا با هم مصاویه. برست شد بگه دوتا با هم مساویه. کسی که زندگی میکنه با عزت باریکلا نورش بیسته. کسی هم که زندگی با عزت گیرش نمیاده. میبینه دارم بهش ظلم میکنن سر عقیدهش وای میسته میمیره جانش رو میده اینم هم نبرش بیسته این دوتا با هم مصاحبه اینو می‌خواد بگه که، درست اش او اومد و انت کریمون بین غنا و خفقل بنوده پایین نگاه کنید خفق البونود ازتراب ها تکون خوردنش ولبونود جمع و بند و هوه عل ال کبیر یازده رو ببین میگه شاعر دیگری گفته این الان که داریم میخونیم تعجیزه تعجیز یعنی عاجز نشون دادن مخاطب که تو نمیتونی مثل اینکه یکی میگه میرم فرض کن که میزن همه تا میگه بزن بزن این بزن بزن یا نمیتونی بزنی باجزی اگر راست میگه بزن؟, میگه بزن یا همینطور الان نگاه کنید تو خود قرآن میگه فی ریبن مما نزلنا الا عبدنا فعتو به صورت من مثله این قران فی ما نازل علی یعنی اگه شما شک دارید در اون که ما نازل کردیم بر پیغمبر خدا اگه شک دارید در مورد قرآن فتو به صورت مم شما یه قرآن مثلش بیارید یه سوره مثلش بیارید بی نمتونید از آوردن سوره مگه نمیگید قران شک داریم درش خب بسم الله فعتو به صورت مم شما یه سوره مثلش بیارید نمیدون. اینجا ببینید همین حالا اون من آیه مثال زدم. این تعجیزه میگه عرونی بخیلند نشان بدید به من یک بخیلی رو تاله عمرم به بخلهی یعنی عمرن تمیزه به بخلهی متعلق به تاله است یعنی به سبب بخلهی یه بخیلی به من نشون بدید که این تاله جمله صفت بخیل. یه بخیلی نشون بدید که طولانی شده از جهت بخلش به خاطر بخلش عمرش عمرش طولانی شده به خاطر بخلش مثلا یکی رو به من نشون بدید بگید که نگاه کنینو این الان چهار سال چهار هزار سال زنده است یا دیویست سال زنده است 500 سال زنده است تا همین این علتش چیه؟ که به کسی چیزی نداده بخیل بود. بخل باعث شده این طول هم پیدا کنه کن. میدونه به من نشون بدید یه بخیل با عمر طولانی به من نشون بدید یه نمیتونه نیست و ها تو یا بیاورید کریمن یه کریمی رو برام بیارید بگید نگاه کنیم حاتم تاییه خیلی جود کرد جود کرد تو در سالگی بیست سالگی مرد اینم فلانیه ببین جود کرد جود کرد مرد و ها تو کریمند و یک کریمی برای من بیارید مات هم کسرت کسطه که ام نکه زود مرد به خاطر کسرت بود یعنی چی؟ یعنی نمیتونید بخیلی چنین به من نشون بدید و نمیتونید کریمی چنین برای من بیاورید اگه راست میگید بیارید دیگه بخیلی بیارید با عمر طولانی یا کریمی بیارید جوون مرگ شده اون عمر طولانی پیدا کرده به خاطر باخل و این زود مرده به خاطر کرم هم چیزی نیست آجیزی. یا یایم من از قرآن براتون مثال زدم چی بود ان کنتم فی ریبن مما نزلنا علی عبدنا فعتو به صورت من مثلی اگر شک دارید در مورد این قرآنی که ما بر پیامبر برنازل کردیم شما هم سوره همانندش بیا بیارید که ما میبینیم یعنی نمیتونید همچین کاری کنید خب این مال این تعجیز یکیه که خود ما هم زیاد استفاده میکنیم ها میگیم بخند بخند اب نداره بخند امتحان هم هست اون طرف میفهمه که داریم تحدیدشو آه. و قال غیرو غیرش گفته خیلی اصلا یه چیز عجیب و غریبیه این کتاب دهم و میگه قال عبودتیه متنبی گفته یازده رو میگه قال آخر یه کس دیگری گفته دوازده رو میگه و قال غیرو روو معمولا موقع میگن که قبلش مثلا گفتن متنبی گفته و میگن باید غیرش دیگه حالا عجیب و غریب نوشتن این با اون که کتاب درسیه میگه ازالم تخش آقبت اللیالی ازالم تخش آقبت اللیالی ولم تستهیه پس ما تشاءو میگه عاقبت اللیالی یعنی این شبها این شبهای گناه این شبهای آلوده اگر از عاقبت این شبهای گناه و آلودگی نمیترسی ولم تستهیه و, و خجالتم نمیکشی از آبروریزی این غلطهایی که داری میکنی اگر از این غلطهایی که داری میکنی تو این شبها ترسی نداری و خجالت نمیکشی فصنع ماتشاع پس انجام بده هر کاری که داری هر غلطی دلت میخواد بهچی گفته گفته اگه نمیترسی از عاقبت این شبها و خجالت هم نمی کشی پس هر غلطی دلت میخواد بکن تهدیدش کرده نه پس نه اگه از خدا نمیترسی، هر کار دلت مخواد برو بکن نمی خواهیم بهش بگیم که برای هر کار بکن تحدیده دیگه یعنی ترس هر کاری رو نکن ازا لم تخش آقبت اللیالی و لم تستهیه عطفه به جای لم تخشا فسنه ماتشا او یعنی ماتشا هر کاری دو دلت میخواد این هم تهدید شد اباهه اباهه یعنی مستحب یعنی چیزی یعنی مباه ما میدونید که یه واجب داریم که باید انجام بدیم یه مستحب هم داریم خوبه انجام بدیم که میشد نصیحت و ارشاد درست شد یه دارم مباهه یعنی میتونی انجام بدیم میتونی ندیم برگه نمیکنه. کن مثل که شما یک نفری گلوش درد میکنه خب میره دکتر دکتر بهش دارون میده میگه بخور گلوش خوب میشه بعد میگه آی دکتر من صفت کردنی بخورم میگه اگر گلوش درد نمی کرد بخور خب این که اگه گلوش درد نمی کرد بخور این بخور یعنی اینکه که هلا گلوش درد میکنه واضحی بخورم مستقیم نه فرج فرضو نمیکنه گلو درد نمیکرد میخوری بخور نمیخوری نه نمی. مباحه درست شده نه یعنی هیچ گونه ترجیحی نداره آزاد اباهه یعنی آزاد نواجبه، نه نه مستحب مباه الان نگاه کنید اینو میگه کلو و شربو بخورید و بیارید بخورید هرچی میخواد وشربو شرو بنوشید هر میخواد چایی آب بنوشید کلو بخورید نون ب می؟ حتی این حتی... حتی برای ما غری نمیشه که این کلو وشربو مطلق نیست. میگه حتی یتبین ی لکن خیطله اب یا ظمن من. این آیه در مورد ماه مبارک رمزانه. شبهای ماه مبارک رمزان هم میگه مثلا فرض کنید. سوال شده شبهای ماه مبارک رمضان آیا آزاد ما بخوریم؟ مم. درست شد؟ شبهای ماه مبارک رمضان آزاد ما چیزی بخوریم میشه؟ میگه بخورید بیاشامید بخورید و بیاشامید بعد میگه چی حتی تا تا کی حتا یتبین لکون تا اینکه مشخص بشه برای شما الخیط است اون ریسمان سفید من الخیطل الاسود از ریسمان سیاه که منظور فجر از ریسمان سفید نه اینکه نخ سیاه و سفید یعنی تو آسمان که سیاست آ، شما به افق که نگاه میکنی میبینی یه خط سفید زیرش یه خط سیاه آه. نگاه که میکنی میبینی که میتونی افق اون طلوع فجر رو ببینی منظور از خیت ابیز خودش بیان کرده من الفجر منظور فجره یعنی کلو وشتبو حتی یتبین لکم الفجر رو بخورید و بیاشامید تا طلوع فجر حالا شما از این رفتید میگید خدا یا میشه شبهای ما چیزی خورد و نوشید گفته بخور و بیاشام تا فجر بخورید و بیاشامید تا طول فجر از این کلام چی فهمیده میشه؟ از اینکه خوردن و آشامیدن در شبهای ماه مبارک رمضان تا طول فجر مباهه مباهه یعنی چی؟ یعنی میتونی بخوری میتونی نخوری اگر شما از این کلو و عشره و وجوب بفهمی الزام بفهمی و موقع ما بعد از اول مغرب شروع کنیم بخوردن بخوریم تا اول فجر همش همطوری بخوریم بیاشون بخوریم بیاشون میتونیم مثلا هرچی چیزی فهمیده میشه اگر وجوب داشت ما نمیخوردیم و نمیآشامیدیم چی بود کاره حرام کرده بودیم باید بیخورد حالا اگه یک نفر یا اتفاق اتفاقی افتاد مشغول بود نخورد چیزی ننوشید باشه رسید به طول و نیت کنه روزه بگیر گردم مثل اون میمونه که دکتر بگه اگه گلود نمی سخت کردنی بخور درست نه همه ما از این میفهمیم که چی که میگم چی شد میگه گفت میتونی بخوری میتونی نخوری سوخت فرق فرقی نمیکنه اگه جلود نمیسوخت فرق نمیکنه میخوری بخوری, بخوری نمیخوری نخوری این میشه اباحد خدام میگه شب های ماه مبارک رمضان بخورید بیاشامید یا نخورید و نیاشامید فرق نمیکنه آزادید تا طلوع فجر این حتا یتبین لکم ها همین فهمیده میشه قیده باعث میشه که کلو بشه ها درست شد کل رو وشرشب او حتی یتبا لکم نکن الخرید و ری یعنی حتی یتبا لکم نکن این الان باحه بود. نگاه کنید اون تهدید که من گفتم تهدید تهدید میکنه خب در واقع چیکار میکنه میکنه؟وزم مثل اینکه الان من میگم به یک نفر تو کلاس میخنده میگم بخند بخند امتحانم هستا، این امتحانم هست قرینه میشه که اون بخند تهدیده یعنی میخندی دارم تهدیدت میکنم امتحانم تهدید اونجا ما چیتو میگیدم خب این طرف زود خودشو جمع میکنم این نخندیدم آقا ببخشید با حسن حالا برا خاطر اینکه بفهمیم مطلب رو نموزج ها رو نگاه کن نموزج نموزج هشتم نموزج هشتم میگه قول و ان نمسیرکو ملن نار بگو یعنی بگو این قول فعل امر امر حقیقی است. هست خدا به پیغمبرش گفته بگو باید هم اینو میگفته نمیگفت امر خدا رو اطاعت نکرده بود همه شرایط امرو داره طلب المتکل من المخاطب الفعل علاوه چلسته لابل دو سو این قول فعل امر تمتعو هم فعل امره بگو کیف کنید تمتعو کیف کنید بگو کیفشون رو بکنم بعد میگه چی؟ یعنی پیغمبر بعد به اونا بگو کیفتونو کنید اونام فردای قیامت بیان میگه خودت گفتی کیف کن. ما هم رفتم کیف کرد به پشتش نگاه فعن نه مسیرقومملا نار زیرا حرکت شما مسیر شما سردمشت شما به جهنم ها بگو عفتونو کنید ولی دارید طرف جهنم میرید چون دارید طرف جهنم می کمی فعنن مسیر کاملا نار غرین است که داره تهدیدش میکنه به خاطر این گناه و تم که میخوان انجام بده مثل اونه که گفته بخندید بخندید امتحانم هم داریم. قل تمتعوا فان مسيركم الى النار. مسیر شما به سوی جهنم. قل معنای حقیقی امره. اما تمتعو معناش بگیر تهدیده. معناش تهدید. نگاه کنید تو متن دیگه ساده بود دیگه. میگه و عزا تدبر کن همین تیکه آخر مونده بود و عزا تدبر تعال امثله و طرف در ها اگر امثله گذشته رو توش دقت کنی و سیاق ساختار اون رو بشناسی و حتی به ما یک نفوها و احاطه کنی به آنچه که او در بر گرفته این مثال ها من قرائن الاحوال از قرائن حالیه و قرائن سیاقیه به ما یک نفوها من قرائن الاحوال و سیاق قرائن احوال و سیاق اگر این کارو کنی ازا برتر ادرکتن خواهی فهمید انسیقل امرفی فیها میبینی که سیغه ام در این ها لم تعتل دلالت علی المعنی الاصلی سیغه ام نیومده برا دلالت بر معنای اصلی و این نما بلکه آمده است نتوفی در تخدیر اومده برای اینکه تخدیر رو بفهمونه فمن شاعه فلیبخل ومن شاعه فلیجد کفانی نداکم کن انجمی المطالبی اومده تصویه رو بفهمونه اش عزیزن او مط و انت کریمون بین تا الغنا و خفق البنود اومده تعجیز رو بفهمونه عرونی بخیلن طال عمرن به و به تو کریمن معتمین کسرت البذلی تهدید تحدید بکنه ازالم تخش و اللیالی ولم تستحیه زالم تخش آقبت اللیالی ولم تستحیه فس نعما تشار یا اومده اباهه رو بفهمونه مثل کلوش رو او حتی یتبع لکم ن وخی من بی از و منلقی و منر. فجر. این بحث امر به طور کامل تمام شد. حالا نموزج ها رو نگاه کنید نموزج هایی که داریم میخونیم دکرار دیگه. و نموزجان لبیان سی از امر، نموزج برای بیان سیغه ام و تعین المراد من کل سیغت بیمایت و منظور از هر سیغه کدومه یعنی آیا معنای حقیقی امره یا یعنی معنای مجازیه اگه معنای مجازیه کدوم یک از این خب قال تعالی خداوند تعالی فرموده خطابا یعنی مخاطبند در حالی که خطاب میکرده لی یحیی علیه السلام خدای تعالی داره به یحیی به خودش خطاب میکنه و اینطور میفرماید خدا داره به بنده خودش پیانبر خودش یحیی میگه یحیی ابن زکریا و خطاب میکنه به او و اینطور میکنه. میگه میگه خذ الکتاب بگیر این کتاب را به قوتن این به قوتن یعنی معقوتن بایه به معنای معص این به قوتن حال است از برای فاعل خود یعنی کتاب الکتاب قویین بگیر این کتاب رو در حالی که قوی و سفت و محکم یعنی سفت و محکم این کتاب رو بگیر خوب این چیه؟ معنای حقیقی امر، همه اون خصوصیات معنای حیری هم رو داره. طلب کرده متکلم خدا از مخاطب خودش یحییای. طلب کرده فعلی رو اینکه کتاب آسمانی رو بگیره. اونم با قوت. بعد هم استعلا توش هست بله خدا بس نبی خودش میخواد. لزوم هم هست بله داره رسالت رو میده. اگر این وظیفه رو که داره مهتش میذاره انجام نده، مورد توبیخ باقی میشه، واجبه برش انجام ده. همه معانی موجود در تعریف آن درش هست، پس معنای حقیقی تمام رو قالل این وازی اغلجانی ایرانی هم هست، که مال این منبرای فارس بوده و اینطور میگه مقالاً ارجانی گه شاور سواک سواکه یعنی قیره که مشورت کن با غیر خودت با دیگری مشورت کن اذا نابد که نائبتون نابد که یعنی اصابت که نائبتون یعنی مصیبتون هنگامی که به تو مصیبتی رسد میگه با غیر خودت مشورت کن هنگامی که دوچار مصیبتی بشی من در روزی اگر در روزی دوچار مصیبتی شدی با غیرت مشورت و این کنت من اهل مشوراتی این و این کنتم یعنی و اگر و اگر چه خودت از اهل مشوراتی یعنی کسان دیگه میان پیش تو مشورت میکنن تو خودت از اون کسانی هستی که مشورت میدی خودت عقل کل میدونی دیگران میان پیش تو مشورت میکنن ولی اگر خودت هم یه روزی دو چهار مشکل شدی خودت عقل کل حساب نکن با دیگران مشورت کن درست شد؟ پس چی گفت؟ شاور سواک مشورت کن با غیر خودت ازا نابد که نائبتون اومد اگر روزی مصیبتی به رسید هنگامی که مصیبتی به تو رسید هنگامی که مصیبتی به رسید که مشکلی برات پیدا شد مشورت کن با غیر خودت و این کن تم این اهلت مشوراتی اگر خودت از اهل مشورت هستی کسی هستی که دیگران میان با تو مشورت میکنند بروس اگر چه تو کسی هستی که دیگران نسی. خب این کار کرده نصیحت کرده دیگه ولی اینطور نیست که اگر ما مشورت با نکردیم میاد ما رو این در واقع ارشاد رو بگید نصیحته شاور سواک لنه ارشاد و نصه برای ارشاد و نصیحت مشخصه و قال عبول عطاهیه. حالا بریم سراغ آقای عبول ببینید چی میگه میگه وخفز جناحک بالتو بیار پایین یعنی خضوع کن وخفز جناحک از قرآن گرفته که در مورد پدر و مادر میگه در مقابل اونها خفظ جناه کنید بالتونو بندازید پایین آه. این مرغار دیدید موقعی که یه بزرگ میدهشتی در بالاشون پایین تا پایین پا یعنی تسلیمیم خازیم، ایم میگه وقف از جناحک تو بیار پایین مثل خروس به قول خودمون بالا رو نده بالا و سینه بده جلو وقف از جناحک این منه عمارتن امارتن منه تا دومشه مفهول اگر عطا شد به تو داده شد به تو امارت فرمانروایی ربایی آ ریاست به تو داده شد اگر به تو ریاستی داده شده پس بنابراین خوضو کن بالو پر بنداز پایین توازو کن اون که رئیستره بعد متوازه تر باشه وقت به جناحه ان این منه ورقب به نفسه که ان لذاتی رقبه با ان یعنی بیزار شدن رقب تو انکه یعنی از تو بیزار ورغب به اون بال تعدیه است یعنی بیزار کن خودت رو ان لذاتی ردا یعنی حلاکت لذات هم از حلاکت لذات لذاتی که حلاک میکنه از حلاکت لذات چکار کن؟ نفست رو بیمیل کن، بی رغبت کن، بیزار کن خودت رو از لذت ها، چون تا موقعی که رئیس نبودی، کاری نبودی، دستت به جایی بند نبود، این لذات حرام حلاک کننده در اختیارت نبود، حالا که امیر شدی، ممکنه بتونی تو سر کسی بزنی، ممکنه مالی کسی رو بتونی ببری، آه، دستت باز شده خودتو بینیاز کن نفست رو بیمیل کن از اینکه به طرف لذات حلاک کننده بری و چیه؟ این ورقب با اون وخفز میگه تواضع داشته باش و خودتو بیزار کن از آزار و لذت و لذتهای حلاک کننده چی میفهمید از این نصیحت و ارشاد بله عبولتاهیه که نمیخواد بیاد دوما دستور بده پایین نگاه کنید میگه المراد به خفز جناح التوازه منم گفتم الردا یعنی الحلاک اینم ما کردم قال عبولالا آقای عبولالای معری گفته میگه فیا موت فیا موت ان الحیات زمیمتن و یا نفسو جدی ان دهرکه هاضلو میگه ای مرگ پس ای مرگ زر به ملاقات ما بیا ای مرگ ما را دریاب به ملاقات ما بیا چرا چون ان الحیات زمیمتن زمیمه یعنی مزمومه فعیل به من و مفعول زیرا این زندگی خیلی مزمومه خیلی مورد مزمته این زندگی خیلی خیلی بده این زندگی به درد بخور این مرگ بیا چون این زندگی دیگه جای خوشی نداره بعد میگه یا نفس و جدی به خودش میگه ای نفس من ای روح من آه؟ ای روح عبول جدی تلاش کن ای نفس تلاش کن چرا؟ چون این ندهرکه حاضری زیرا روزگار سر شوفی داره جدی نیست تو جدی باش در این دنیا روزگار میخواد ماسمالی کنه تو رو غافل کنه اما تو جدی باش تو گل نخور خب شاهد ما سر جدی و زور هستش که یکیش خطاب به مرگ، ای مرگ بیا رو دریاب زیارت کن یکیش هم خطاب به نفس خودشه ای نفس من تلاش کن جدی باش آه. زیرا روزگاه گفتیم خب یه لحظه سرویس رفت از دست دوباره برگشتیم خب وقتی که خطاب به غیر زبل میکنه به مرگ میگه مرگ ما مارا دریاب یعنی کاشت و مرگ میفرا و به نفس میگه ای نفس جدی باش یعنی کاشت و نفس جدی بودی و شوخی روزگار تو رو سر کار نمی زور و جدی ملاقات کن زور ما را جدی تلاش کن جدییت داشته باش هر دو فعل همراه برای تملل چون خطاب به غیر ذوال نگاه کنید پایین میگه یوفزل الموت علال حیات ترجیح میدهد مرگ رو بر زندگی و یعمو رو نفسه و به خودش عمر میکنه انتخوزا فی طریق الجد اینکه در راه جدیت تلاش کنه لعنه دهرقی رو جادن زیرا که روزگار جدی نیست بعدی رو ببین و قان آخر شاعر دیگر گفته عرینی به محشوق خودش میگه محبوب خودش میگه عره یا عرو عری یعنی لشان بده تو خانم برست شد عرینی میگه خانم تو که به من میگی جود و بخشش نکن عرینی جوادند به من نشون بده بخشنده ای رو که این صفحتو داره ما تا مرد مرده است از لاغری گرسنگی. یه بخشنده ای بوده بخشیش کرده از گشنگی مرده به من نشون بده لعلنی ارا ما تا منم معتقد بشم اون چیزی رو که تو معتقدی ارا یعنی اعتقد تو ما ترعی یعنی تعتقدی نه. تو میگی نه آدم چرا باید جود کنه آدم باید بخل ببرسه میگه که قانون به من نشون بده یه کریمی رو که از گورสนگی مرده تا من هم به اون چیزی که تو معتقدی معتقد بشم او بخیلن یا به من یه بخیل نشون بده مخلدن که جاودانه شده لعلنی ارا ماطراین این به قرینه اون قبل افتاده تا منم معتقد بشم به همون چیزی که تو معتقدی بخل ببرم میگه یا یه کریم به من نشون بده که از گشنگی مرده یا یه بخیل نشون بده جاودانه شده عمر نوح پیدا کرد تا من هم معتقد بشم به اون چیزی که تو معتقدی یعنی چی؟ یعنی نمیتونی همچین چیزی به من نشون بدی امکان نداره تعجیزه. مثل اون این اصلا این بیت از نظر معنا مساوی با اون بیتی که توی امسله خوندیم عرونی بخیلن اونجا داشت به مردم میگفت میگفت اصلا مفهوم و متنش همینه اونجا عرونی بود به مردم میگفت اینجا عرینی به معشوقش میگه درست شو هر دو یه محتوا داره یه معنا داره عرونی جوادن آه بخشنده ای که نشون بده به من عرینی جوادن نشون بده به من بخشنده ای رو که ما تا مرده است از گرسنگی حوزل یعنی لاوری از بیچیزی مرده نه لنی ماترین تا منم معتقد شم اون که تو معتقدی او بخیلن مخلده یا یه بخیل جافدانه به من نشود او نگاه که از زمان نوح تا الان زنده است چون بخیله تا منم معتقد شم بخل خوبه بروش شد پایین میگه الهوزل به زم و بلفد هوزل حزل هزیر یعنی لاغر دیگه الحزل به ذم و بالفد و بالفق. اینجا منظور زیق و فقره. و اینکه میگه که به من نشون بده جوادی رو که مرده است از لاغری منظور از فقر رو ناداریه و الا حزل به معنای حزیل به معنای فقیر و اینها نیست حزیل یعنی کسی که لاغری حزل یعنی لاغری ولی اینجا منظور که مرده است از لاغری یعنی چی یعنی مرده است از بگید وقعه رو نداری تنگ دستی زیغ شیشو رو نگاه کن میگه که قال خالد ابن صفوانه خالد ابن صفوان گفته ین صفو ابنهو داشته نصیحت میکرده فرزند خودش. خالد ابن صفوان کیه؟ میگه کان منفوسهایل عرب المشهورین از فصیحان عرب و مشهور و کان یجالس و عمر ابن عبدالعزیز و هوشامب ابن عبدالملک و این آدم همهشیم بوده با عمر ابن عبدالعزیز و هشام بن عبدالملک و لهو معهما اخبارون و با این دو نفر بس. خب درست شد میگه که این آقای خالد ابن صفان نصیحت میکرده فرزند خودشو اینطوری گفته که من اعمال سر و کنار بگذار از کارهای پنهانی ما اونی رو که لا لا و لکه فلعلانی لا لا فلعلانیه گفته پسر یه کارهایی هست ممکنه پنهانی بخوای انجام بدی نگاه کن هر کاری رو که میخوای پنهانی انجام بدی ببین اگر در آشکار باشه صلاح هست یا نیست انجام بدی چرا این گفته گفته هیچ چیزی پنهان نمیمونه تو فکر میکنی پنهانی این کارو کردی انجام میشه نه لو میره پس الان که داری یه, یه کاری رو میکنی حواست باشه که اگر این آشکار شد چی میشه پس کارهای پنهانی آه، از کارهای پنهانی کنار بگذار اون کارهایی رو که توی آشکارا صلاح نیست تقیید حرف درستی ها. درست شده نه چون هر کار پنهانی رو که میبینی پنهانی داره انجام میدی و آشکارا صلاح نیست و انجام بدی بذارش کنار بود. چرا؟ چون یه روزی همین پنهانی آشکار میشه یه قطعه دعمن اعمال سر مالا یسله و یسله و لکف العلانیه اون معلومه دیگه دعمن اعمال سر ارشاد و نصیحت هفتو ببین این الان شعر قشنگی دقت کن میگه فعش واحدن واحدن حال. مثل همون اش عزیزنه توی متنه او متوهند کریم میگه فرعش واحدند تک و تنها زندگی کن یا الغوز. تک و تنها زندگی کن او سل اخاک یا نه با دوست و رفیقت و آمد داشت میگه یا تنها زندگی کن یا معاشرت اجتماعی یعنی چی؟ یعنی تو مخیری؟ بابا میگه این آدم اینه اون آدمونه خب برو سر یک کو تنها زندگی تو چه شد به کسی نیفت یا نه بیا با مردم زندگی کن ولی دیگه اینقدر عدا و در نه یا این اونه اون اونونه اون اون. مردم همینند، گاهی به حق دن, گاهی به باطل گاهی درست انجام میدن گاهی به عط میزنن تو دو راه بیشتر ندارین یا تنها زندگی کنی از مردم شکایت نکنی یا با مردم زندگی کنی و ای با اشکالات مردم رو تحمل کنی یکی از این اینجورا مخیلی میگه فعش واحدن با او هم میگه دیگه این میگن برای تخییر تنها زندگی کن او سل اخاک یا با مردم رفت آمد کن دیگه اشکال نکنی چرا؟ فعنهو مغارف و زنبن مرتن و مجانبهو یعنی مجانبهو مرتن و این نفوهو میخوره به اخاک زیرا این دوست تو این کسی که با معاشرت میکنی با مغارف مغارف یعنی مرتکب مغارف و زنبن مرتن یک بار خطا میکنه. گناهی انجام میده. و مجانبهو یک بار دیگه هم نه مردم اینطوری گای باید میزنن به بهدن میگه یا تنها زندگی کن دیگه گله و شکایت از مردم نداری یا با مردم زندگی کن و تحمل کن چون مردم اینطوری هم گای به هدف میزنن گای به اوت مغارف و زنب مرتتن و مجانبه و قشنگه پایین نگاه کن مغارف و زنب مرتکبو یه قولو اذا اردت ان لا اگر اراده کردی که هیچ دوستی در کنار تو نلذسه اذا اردت ان لا دیگون مع كصديقون فاش برو تنها زندگی اگر نمیخوای لغزشی هیچ کسی رو ببینی برو تنها زندگی کن و کم مستحيل و اینم ممکن نیست چون انسان اصلا نمیتونه تنها زندگی اما اذا ارادتان تعيش مع الناس اما اگر اراده کردی که با مردم زندگی بکنی فسامه اخوانه کرد پس مسامحه کن با دوستانت و سل هم و با اونها رفت و آمد کن الان ما بهم من عیوب با همه آنچه که اونها ازی به اشکار دارن چشوتو ببند اگر میخوای با آشون زندگی نمیشه که با مردم زندگی کنی خطاب و لغزش اونها رو نبینیم فرشته که نیستن که فرش واحدن او سل اخاک اش و سل این دوتا فعل امرن برای تخییر مثال هشت رو خوندم قل و ان مسیرکم نمسیر که گفتیم قل فعل امر است امر حقیقی و تمتعو تهدید است چون قصدش این نیست که بگه که ایف کنید بلکه پشتش میگه فرنم از سیرکم این حرکتتون حرکت به سوی جهنمه و این نشون میده که تهدید داره میکن یا آیه دیگری هم مثال زدم آیه دیگری که مثال زدم مثل همین بود قول اعملو فسیر الله حملکم و رسوله و المؤمنون جلسه قبل قول اعملو بگو هر کار دلتون میخواد بکن بعد میمید فردونه بگی که اه خودش گفت خداوند هر کار میگه نه بردش گفت چی بگو هر کار میخواد بکنی بعد گفت فسیر الله کن خدا عملتونو ها و رسوله رسول خدا میبینه ولی مومنون اهلیت هار میبینه بگو هر کار میخواد بکنید بکنید خدا هست مرتعید نو لا قال ابو الطيب يخاطب سيف الدوله ابو الطيب مورد خطاب قرار داده سیف الدوله ابو الطيب زیر دست سیف الدوله سیف الدولت امیر مين مورد خطاب قرار داده سیف الدوله میگه جود اخلجود یعنی یا اخلجود ای برادر جود یعنی ای کسی که با جود به دنیا آمده ای جواد ای بخشنده اخلجود اعت ناسه ما انت کن. اعت انناسه بده به مردم ما انت کن. یعنی ما انت مالکون چیزی که تو مالکش است مال و سر تو آدم کریمی هستی اخل جودی من نمیتونم بگم جود نکن جود کن مالت رو میدی به کسی بده تو باید جود داشته باشی تو نمیتونی جود نداشته باشی به این شعرهای دیگه میخوای پول بدی بده عهد ناسه ما انتا مالکم. کن و لا تو عن ناسه ما انقائل اما لا توتی انن ناس. اما نده به این مردم ما انا قائلون اون چرا که من دارم میگم یعنی شعر من رو میگه ای کریم ای بخشنده ای آقای سیف الدوله مالت رو میخوای بدی به این مردم بده ولی شعر من رو به اینها نده و لا توتی ما انا قائل یعنی ما انا قائل گوش سیفاد رفته توی محفلی اونجا شعرا بودند. متنبی هم بوده شعرا شعر گفتند سیفاد دوله به اونها عطا و کرم کرد متنبی شعر گفته چیزی نداده درست شد متنبی این شعر رو بهش میگه میگه تو میخوای به شعرهای دیگه پول بدی بده چون تو آدم بخشنده یا بخشنده نمیتونه نبخشه ولی شعر من رو به دیگران نده منظورش چیه؟ شعر من رو به دیگران نده ببین میگه من شاعرم شاعر برای سله شعر میگه برای گرفتن عطا تو میخوای به شعرهای دیگه پول بدی دستت درد نکنه بدی اما اینطور نباشه که به من ندی اگه به من ندی منو مجبور میکنی برم دیگری رو شمتحش کنم برم کافور اخشیدی در مصر اونو متح کنم شاعرم من اگر من به هم چیزی ندادی و من شعر زیبای خودم رو برداشتم رفتم کافور رو باهاش متح کردم تو باعث شدی که شعر من در متح کافور بشه تو شعر من رو عطا کردی به کافور یعنی منو محروم نکن منو مجبور نکن که برم دیگری رو مد کنم تا به من عطا بده من نمیگم به دیگران نده بده اما منم محروم نکن چون اگه منو محروم کنی من مجبور میشم شعر زیبای خودم رو در مده دیگران بگم اون موقع تو باعث شدی که شعر من به اونها عطا بشه به اونها برسه بشنگ گفته اعط الناس ما انت مالکو ولا تعطین الناس ما انا قائل اونچه که من قائلش هستم پایین نگاه کنید میگه یقولو اعط الناس عموالک به مردم بده مال و رو ولا تعطهم شعری اما شعر منو نده یعنی چی ای لا تهوجنی الی غیرک یعنی منو محتاج مدح دیگری نکن که برم مد دیگری را کنم و سلا و عطا از او بگیرم اون موقع تو شعر من رو به او هدیه کردی خیلی زیباست نگاه کنید دهومی رو و قالت نل الفجاعته آقای قطربن الفجاعته یو با و نفسه به خودش داره میگه قطرب نرفجاعه داره مورد خطاب قرار داده خودش کیه این قطرب نرفجاعه کیه میگه هو احد و رؤوس الخوارج خوارج یکی از بزرگان خوارج هو احد و رؤوس الخوارج خوارج یکی از بزرگان خوارج فارسون مذکور سوارکاری قابل ذکر بود و شاعر اسلامی مشهور و شاعر مسلمان و معروفی بود سلم علیه بالخلافت سلاس عشرت سندت تسلیم شدن مردم به خلافتش به واسطه خلافتش سیزده سال سیزده سال خلیفه مردم بوده از خواهر چه خب شناخت میشه و قال قطرب نرفجاه یو خاطب و نفسه میگه فسبرن فی مجال الموت سبران اینجا صبرن از نوع مستریه که جانشین فعل هم شده یعنی اسبری فی مجال الموت اسبری خودش میگه دیگه به نفسش یا اسبر یا قطرب نرفجاه اصبری یعنی یا نفسو اسبر یعنی یا قطره النفجار به خودش خطاب میکنه ای قطره النفجار صبر کن اسبر فی مجال الموت اسبر می دوم تاکید است بالای اول یعنی اسبر فی مجال الموت یعنی چی در زمینه مرگ در زمینه مرگ در مقابل اسرائیل صبور باش ای قطره النفجار چرا چرا صبور باش چرا دندون روجگر بذار تسلیم اسرائیل شد فما نیل الخلود به مستطاین ما ما مشبعتون به لسان فهم تفریع تعلیل نتیجه است یعنی زیرا زیرا ما نیل الخلود زیرا به دست آوردن جاودانگی نیست به مستطاین یعنی به محدود زیرا کسی تو این دنیا جاودانه نیست مردن مال هم از گل و نفس زایقۃ میگه ای قدر نرفو اسپر. به خودش میگه ها مثل که من به خودم بگم فلانی سب پیشه کن در مقابل ازرایب کی تو این دنیا تونسته جاودانه دانه هیچ کسی تو این دنیا جاف دانه باش در مقابل مرگ مرگو بپذیر اینه معناش فصبرن فی مجال الموت سبرن فما نیل الخلود به مستطایزی را نایل شدن به جاودانگی ممکن نیست فما نیل الخلود به مستطا شد اینجا معنای این جا داره آقای قطر ابن الفجاهه به خودش میگه به خودش میگه معناش چیه مثلا من به خودم بگم فلانی در مقابل اسرائیل صبور باش در مقابل مرگ صبور باش زیرا مرک شطوریه که در خونه همه میخوابه قبول کن توی کتاب نوشته صبرن المعن الحقیقی لیل امر این صد نصاب غلطه معنای حقیقی امر اینجا نیست شده نه مگه من میشه خودم به خودم امر کنم استعلا باشه استعلا یعنی بالا بپایی خودم به خودم دارم میگم استعلاش کجا لزومش کجاست یعنی اگر سب نکرد خودم خودم رو تنبیه میکنه توبیخم ما تعریف فعل عمرمون چی بود اینکه طلب المتکلم من المخاطب الفعل علاوش الاستهلا و لزوم یه معنی نداره که درسته اصلا معنای حقیقی هم اینجا غلطه پس چیه اینجا معنایه این؟ اینکه من به خودم به خودم بگم فلانی صبور باش دندون رو جگر بذار جزا و فضا نکن در مقابل مرگ مرگ سلاغ همه میاد چطوریه که در خونه همه میخوابه تو چرا داری اینقدر بیتابی میکنی؟ ببینید اگر بگی که اینجا خودش داره به خودش میگه برای خاطر اینکه دلداری به خودش بده برای خاطر اینکه خودش رو باون خودمون تسلیت بده خب معنا خوب یعنی داره به نوعی خودش رو دلداری میده نه ارشادم نیست یعنی من خودم خودم رو ارشاد نمیکنم خودم که خودم رو نمیتونم ارشاد کنم ارشاد مال این جاییه که طرف مقابل رو آدم بهش میگه این کارو بکن خوبه این خودش داره به خودش میگه آه؟ اگر خودش به خودش داره میگه داره به نوعی به خودش چیه؟ دلداری میده داره به نوعی به خودش تسلیت میده که آقای فلانی من به خودم میگم بابا ولش کن دیگه این شطوریه در خونه همه میخوابه و ما هم که خونمون رنگیتر از دیگران نیست میشه تسلیت تعذیت دلداری دادن آه این معنا درست حالا اگر این سبرن خطاب به نفس خودش باشه به روح خودش باشه اون میشه غیر سبل اقول میشه تمنی یعنی کاش نفس من صبوری کند در مقابل مرگ کاش روح من صبوری کند در مقابل مرگ آه؟ زیرا جاودانگی ممکن نیست ولی خب این خطاب به خودشه به نفسش نیست مثل اون بالا که یا و جدی که ابو را میگفت نیست خطاب به خودشه چون خطاب به خودشه قصدش دلداری دادن تسلیت دارن دلگرمی دادن به خودشه راضی کردن خودش، دلداری و دلگرمی دادن و تسلیت دادن و الا معنای حقیقی هم نیست <تصفيق> یه که خودش به خودش میگه بابا همه میمیرن دیگه خب وقتی همه دارم میمیرن این شطوری هم در خونه همه میخوابه خودش به خودش می... پس من که خونم رنگینتر از دیگران نیست ما هم قبول کنیم دیگه چرا کنیم؟ اینا داره این حرفا رو میزنه که خودش آرامش پیدا کنه، دلگرمی پیدا کنه، تسلیت پیدا کنه و در مقابل مرگ بگید آروم باشه. معناش میشه تسلیت و دلداری، تسلیت و دلداری نسبت به مرگ. خب این بحث رو ما تمام کردیم بحث امر رو و ما امر رو فهمیدیم و مباحثش رو کاملا دانستیم مباحثش رو کاملا دانستیم حالا بحث ام تمام شد و ما گفتیم که نهی امر منفیه نهی امر منفیه همین فقط به شکل منفیش من حتما حتما آی امام قلی به بقیه دوستان هم میگید حتما نهی رو انشالله دوشنبه درس خواهم داد خود شما بیاید دوست دیگر هم هست دیگران رو هم بگید بیان که نهی رو من بگم چون نه پیوسته به امره و این دوتا رو با هم به قول خودمون قبل از عید برای شما گفته باشم چون فرژه برای کار مجازی معنا ندارد درست شد پس بنابراین میای که این مبحث رو قشنگ بفهمید درس امر و نه با هم دیگه تکرار بشه برنامه من رو به هم نمی ریزید انشاءالله الله من مبحث رو به قول خودمون کامل میکنم برای شما و شما هم این رو خواهید داشت و بعد از این مباحث دیگرمون رو خواهیم خوند پس بنابراین به هیچ وجه من الوجوهی دوشنبه نبینم که کسی نباشد موفق و معید باشید این جلسه رو هم از روی سیستم که ضبط خواهد شد و خود این دارد میتونید استفاده کنند گرچه من درس رو گفته بودم این درس فقط مثالهاش بود و مطالبش و خیلی هم توضیح دادیم یه دوره متونه نظمانه اصل بود پس بنابراین حواستون به اصل موضوع باشه. به خداوند صبحان میسپرم شما رو موفق و معید باشید در پناه خداوند تعالی و السلام علیکم و رحمت الله و برکن